الرحمن الرحيم و بهین استعین و خير موفقين الرموز ثم سلام السلام غلا اشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله الالهامين ابي القاسم محمد صلى الله عليه و اهل لبيت التجبيل الطاهرين المعصومين من الان نه قیام قيوم يوم الدين سيامو بتريه الله في الارضين سوره مبارکه هم یکی از سوره‌های قرآن کریمه در اول قرآن کریم سبت و زبت شده لذا بهش میگن فاتح و کتاب ابتدا و اول کتاب و ما قرار گرفته یکی از امتیازات این سوره اینی که در قرآن کریم باید ما در تمام نمازهای واجب و نمازهای مستعب این سوره حمد رو بخونیم و هیچ سوری کفایت از خوندن سوره همد نماز نمیکنه در درکت اول برابر این است که همه مسلمان هر روز چند بار واجه میره بخونند هیچ سورهی در گرانی کرین اینقدر واجب نیست همه بخونن اما این یه سورهی همچه امتیازی داره یه مضمونی داره که همه باید اونو هر روز چند بار بخونن یه بار دوبار هم نه حد اگر انسان نماز وستحب نمیخونه نمازهای واجب رو ده بار باید این سوره رو بخونه قهران اقل کنجکاپ از آدم سوال میکنه که تو این سوره چه چی چیزی نهفته نه که همه باید روزی ده بار اهم از زن و من اینو بخونند خود اقلی بهتری راه نیست که وارد خود سوره بشی. ببینیم در این سوره چه چی چیز آمده اون وقت معلوم شه سر رشتیه برد وقتی وارد میشیم میبینیم این سوره دو بخش داره یه بخش مربوط به اسما و صفات و کمالات فروردگاره بخش دوم مال ما انسان هاست بخش اول از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه خدا دو صفتی رحمان و رحیم داره همه موجودات به وسیلی صفت رحمانیت فروردگار و به وجود آمدن رحمت واسعی فروردگار مطال باعث شده که اینا رو به وجود بیاره درکت و عدم نگه نداره ریزا دو بارم تکرار شده به عنوان مبالغه است چون صفت رحمت منشای این همه تشکیلات شده ولی سایر صفت انگر گستردگی نداره اما این صفت گسترده است و روز قیامت هم همین خدا براست برپا کنه روز قیامت هم هر حرف خدا هستیش کسی اونجا بدون اجازه فروردگار و متعال حق حرف زدن نداره برد از یکن هر بود مال ما انسان هاست خب خدا میگه اینو بگو چی بگم بگم من فقط در برابر فرمان تو مطیعم، گوش به حرف کسی نمیدم غیر از تو پرستش منش همینه دیگه. و چون راه راه مشکلی، گوش به افتادن خدا مشکلی نیست چون چند چیز جلوش میگیره یک عادت خود آدم. اونم که 15 سال عادت داشته هر چی بخواد بگه بگه به هر چی نگاه کنه بکنه به هر چی دست بزنه بزنه عادت کرده حالا بخواد بندوار گوش برد خدا بده خدا بهش میگه به هر چیزی حق نداری نگاه کنی بزنه مردم نباید نگاه کنی خودم جوون دیگه خب زن میگیری اینجوری اومدن بیرون چیکار باید کرد مشکلی آدم سالها عادت کرده دروغ بگه حالا میگن حق ندیری دروغ بگی مکلفی باید حرف که میزنی راست باشه دروغ ببلوم یا سایر چیزا فوشق نداری بدی چیزای بد خب این عادت کرده یهو نمیشه ترک عادت کار مشکلیست ولی ازا خدا یاد داده گفته هر وقت گفتی میخوام در برابر فرمان تو مطهی و بندوار اطاعت کنم فتورم بگی در این باره از خودت هم کمک میخوام چون تنهایی نمیتونم هر که تنها رو باش کشتی بگیره زمین باید از خدا کمک خواست نفس اماره به این زودی تسلیمه خدا نمیشه حاضر نیست الا هم همونیش که میبینی مکسر مردم از اول که خدا گفت باید گوش برف من بدی نه گوش بحرف نفس انباره بیشتر مردم مخالفت کردن میبینیم دیگه اگه بود همه کرده بودن مشکلی به نظرشون برابره خدا یاد داد اگر بخوای گوش برف من بدی تنهایی نمیشه باید از من خدا یاری به تنبی و کمک بخوای بعد از ایاکا بود میگیم ایاکا نسته این از تو هم علت این که یاکر ای و مقدم داشه بر دسته این این افاده هسره میکنه از دیگری بخوای در این بار کمک بگیری کسی نمیتونه کمک کنه شما به کسی با آقا که من گناه نکنم گوش و حرف نفس ندم چکار میتونه بکنه؟ ازش که خودش گرفتاره روزا گفته فقط اخ کناه از خدا کمک بخوا، خدا چون خودش گفت این کار رو بکن، کمکت میکنه انشالله اما اگر کمک نخوای، تنها نمی کنیم میخوری زمین خیلی میگم میگم میگن،, میگن آقا ما سعی میکنیم، گناه نکنیم، اما میخوریم زمین، این معناش اینست که تنها داریم بیره به جنگ نفس اماره اگر از خدا کمک بخواد، ضعیف با علاوه قوی پس نفس برمیاد براورین باید از خدا کمک خواست اول خدا با آدم میگه من یه چیزایی بهت دادم در این میدون مفید براد چیه؟ یه چیزی بهت دادم به نام تصمیم که در طول زندگی ازش استفاده میکنی اگه از این استفاده نکنی صرف میگه تو کمک کن را اول از این استفاده کن هر چقدر میتونی بسم الله کم بودش من جبران میکنم ولی تو بخوای اینا رو بذاری اینجا بری دنبال کارهای دیگر اونجا تصمیم بگیری خدا کمک نمی کنی راست نمیگی تو اگر راست بگی اول از هم پولی که دادم خرج کنم کم اومد من میدم بنابراین باید هم بندگی کنیم و هم در این را از خدا کمک بخوایم اول سراغ چیزهایی که خدا بهمون داده به این منظور میریم از استفاده میکنیم. کم و خدا کمک میکنه ولی تو بخوای اینو ذخیره کنی واسه اون جایی که نفس انباره میخواد خرچ کنی اون جایی که خدا گفته نکنی خدا کمک نمیکنه. علامت صدق استعانت تو اینه اون مقداری که خدا به پول داده خرچ کن کم خدا کمک میکنه اینای که بگر کردیم زمین اینجوری تصمیم نمی از اون پولی که خدا بهشون داده استفاده نمی کنن هم خودشونو و میخور زمین دیگه برابرین باید در راه بندگی خدا به اطاعت فرمان او از خود خدا کمک خواست خدا هم باید کمک داده برد برابرین هم باید بندگی کنیم و هم باید در این راه از او کمک بخوایم بندگی یعنی چی؟ حرف خدا رو گوش بدیم خدا گفته نواز بکن بگیم چشم روزه بگیر چشم دوزی نکن چشم ظلم نکن چشم حرفای خداست همش هم به نفع ما و جامعه است. یه دونش به نفع خدا نیست خدا نیازی نداریم ما نیاز داریم اگه ما گوش بدا خودمون اینجوری میشیم، جامعه امنم اینجوری این مالی چیه؟ گوش و حرف خدا ندادن حتی دلشون خواست کردن نتیجه این میشه. این همه زندان این همه پاسدوان این همه دوزنی، این همه ظلم همه درست نمیشه هیچ کدوم تا آدم گوش بحرم خدا نده نه خودش اسلام میشه ولی جامعه جامعه با علم تنها درست نمیشه اگر میشد، امریکا اینجور نبود اروپا اینجور نبود، علم دارن سنعت و تکنیک هم دارن ثروت هم دارن، اما روز به روز جنگلتر میشه محیطشون آدم کشتر آدم خورتر میشن چرا؟ ولی میشه کافی نیست اما اگر یه نفر تصمیم میکنه بوش به حرف خدا بده اگه دوزد در جه اولاً باشه دیگه دزدی نمی کنه دیگه تاموشون باشه مردم شرش راحت میشن اگه آدم کشه توبه کنه دیگه آدم نمیکشه دیگه تمام کارهای بد و زشت با تصمیم به این که ما گوش خدا میدیم و میره دیگه دیگه هیچ شوهری نسبت به زنش ظلم نمی کنه هیچ زنی نسبت شوهرش ظلم نمی کنه این ظلم هایی که شما میبینین دادگستری پر شده همه اینا تعطیل میشه سر اینه که مارمزون ها دادگستری خلوت ها همینه مارمزون خیلی روزه میگیرن روزه اثرش اینه آدم کار بد نمی کنه دیگه حتی دا بگم مثل بعد مارمزون باشه مارمزون نمی کنند ازاد جرم کم اتفاق می افته خلوت می دادگستری خلوت میشه. شه بعد مارمزون دوباره شیطومی و سرا آدم چون دیگه روزه نیست چی کم که پر شد همه کارخونه ها برا می جمله کارخونه دوزدی و سایر جرم ها این اثر اطاعت فرمار خدا اینه هم بعد دنیا و زندگی مادی انسان اسلام میشه و هم جامعش جامع انسانی میشه و هم روحیات و صفات انسان مبادر میشن به صفات انسانی و مناسب با ایمان در درجه بالا اما شما بخوای خدا بدین بدونی کنار خودت درست کنی این شکلی میشه بهتر از بوش دیگه اتوش در نمیاد دیگه برادرش هم سندام میشه و بله. خود یعنی همین نفس اماره کارخونه ایست از توش اینجور آدم میاد بیرون آدم خوب نمیاد بیرون بله. اگه میمد خدا پیغمبر نمیفرستاد. این همه زحمت بکشن حتی کشته بشن که بیان آدم ها رو بگن آقا گوش بر خدا بدی به نفع توست اما گوشاندی به زرد اطری اینه با آدم بگن این هم, هم گفتن باز آدم باور نمی کنه بازم میره دنباله گوش نکردن به حرف خدا امیدواریم خداییمو توفیق بحرمت کنیم اینو درک کنیم که هرچی گوش به حرف خدا بیشتر بدیم بیشتر به نفع ماست نسار روح و تحرقات منبیام و همه حضرات معصومین علیهیم و سلام و شهدای خط تشیع و امام شهدا